سنگ برای سنگر آهن برای شمشیر جوهر برای عشق در خود به جستجویی پیگیر همت نهادم در خود به کاوشم در خود ستمگرانه من چاه میکنم من نقب میزنم من حفر میکنم در آواز من زنگی بیهوده هست، بیهوده تر از تشنج احتزار، این فریاد بیپناهی زندگی از ضربه دردناک یست. به انگامی که مرک سراپا اوریان با شهبت سوزانش به بستر او خزیده است و جفت فصل ناپذیرش تن روس بیانه به تفویزی بیتفاوت نطفه زهراغینش را پذیرا می شود، در آواز من زنگی بیهوده است، بیهوده تر از تشنج احتضار که در تلاش تاراندن مرگ با شتابی دیوان بار باقی مانده زندگی را مصرف می کند تا مرگ کامل فرارسد. پس زنگ بلند آواز من به کمال سکوت می نگرد. سنگر برای تسلیم آهن برای آشتی جوهر برای مرگ از بیمها پناهی جستم به شارستانی که از هر شفه قطاری بود و در پس هر دیوار ای اتشن بود گوش با آوای پای راهگذری، و لختی هر خنجر غلاف ای میجست و با هر سینه مهربان داغ خونین حسرت بود تا پناهی از بیمم باشد مهرابی نیافتم تا پناهی از ریشخند امیدم باشد سهمی را که از خدا داشتم دیری بود تا مصرف کرده بودم پس صعود روان را از تن خیش نردبانی کردم به گشاد دستی دست به مصرف خود گشودم تا چندان که با فراز تیز فرودایم خود را به تمامی رها کرده باشم تا مرا گساریده باشم تا به قطره واپسین پس من مرا سعود افزار شد سپر توشه و پای افزار من مرا خورش بود و پوشش بود به راهی سخت سعب مرا بارکش بود به شانههای زخمین و پایکان پرابله تا به استخوان سودمش چندن که چون روح به سرمنزل رسید از تن هیچ مانده نبود لاجرم به تنهای خود بان آدمش به گونه مردار لاشه ای آن فراز از هر آنچه چه جسر باشد میان فرو دستی و جان پیوندی بر جای بنماند تن خست مند و رها شده نردبان سعودی بی‌باز گشت ماند جان از شوق فصلی از این دست خروشی کرد پس به نشستم دور از غوغای آزها و نیازها پس به نظاره نشستم دور از قوقای آزها و نیازها و در پاکی خلبت خیش نظر کردم که بیشهای باران شست را است در نشاط دور ماندگی از شارستان نیازهای فرومایه تن نظر کردم و در شادی جان رها شده و در پیرامن خیش به هر سوی نظر کردم و در خط ابوس باروی زندان شهر نظر کردم و در نیزه های سبز درختانی نظر کردم که به اعماق رسته بود و آزمندانه به جانب خورشید می کوشید و دستان عاشقش در طلبی بی از بلندی انزبای من بر می گذشت و من چون فریادی به خود باز گشتم و به سرشکستگی در خود شکستم و من در خود فرو ریختم چونان که آواری در من و چونان که کاسه زهری در خود فرو ریختم دریغا مسکین تن من که پستش کردم به خیالی باطل که بلندی روح را به جز این راه نیست آنک تنم به بر سر راه افکنده وینک پیدارها که به سرفرازی از بلندی انزبای من بر گرچه به انجام کار تابوت اگر نشود اجاغ پیرزنی راهیم خواهد بود وینک باروی روی سنگی زندان به اعماق رسته و از بلندی ها برگذشته که در کومه های آزاد مردم از انسان به پستی می نگرد و امید و جسارت را در احشای سیاه خیش می آه باید که بر این اوج بازگشت در تنهایی بمیرم بر دورترین صخره کوه سارانانک هفت خواهرانند که در دلبسای افسائی غروبی چنین بیگاه در جامعه سیاه بلند شیبن کردن را آماده می شوند ستارگان سوگند می‌خورند، گر از ایشان بپرسی که مرا دیدهاند به هنگامی که بر جنازه خیش می‌گریستم و بر شاخساران آسمان که می خشکید چرا که ریشهایش در قلب من بود و من مرداری بیش نبودم که دور از خیشتن با خشمی برنگ عشق به حسرت بر دور دست بلند تیز نگران جان اندهگین خیش بود بی خیالی و بی خبری تو بی خیال و بی خبری وهابیل برادر خون تو راه بر تو میبندد از چهار جانب به خون تو. با پریدنگ گونههایش که از خشم نیست آنقدر کس حسد. و تو را راه گریز نیست نزننا توانایی و بربسته پایی آنقدر کس شگفتی. شدن زمان که به جادوی شور و حال هر برگ را بهاری می کردی و چندان که بر پهنه آبگیر قوکان نصیب غروب خزانی زرین زرهی می گسترد. تو را از تیغ دریقها ایمنی حاصل بود هر پگاهت به دعایی میمانست و هر پسین به اجابتی شاد روزی چه ارزان و چه آسان بود و عشق چه رام و چه زود به دست به کدام صدا به کدامین ناله پاسخی خواهی گفت و اگر نه بپریادی به کدامین آواز فریدرنگی شامگاهان دنباله رو در سکوت فریاد وحشتی رو در پوزون است به کدامین فریاد پاسخی خواهی گفت که منازم میکنین صدای بنده دیگه دو سرگه شده نیست اینجا پیش هم نیست کمان که نو داشتید روتون میخون دیگه؟